بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله التیبین الطاهرین المعصومین لا ما بقیت الله في الارضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام والاليك يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علی الائمه الحادین المهديين السلام على جميع انبیاء الله ورسله وملائكته اجمعین السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علی امیر المؤمنین السلام على صدیقت شهید السلام على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبیین السلام علی جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام علی علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علی الجباد السلام على علی بن محمد الحادي السلام على الحسن بن علی الزکی الأسکری السلام على الحجت بن الحسن القائم المحلي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما و وبغی الليل النهار ولا جعله الله آخر لأهد مني لزيارتكم السلام علي الحسين وعلى علي بن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین قال الحسین عليه السلام صبراً على قضائه که رب لا اله السواک یا قیاس المستقیسین مالی یا رب سواك ولا معبود غیرک صبراً على حکمک یا قیاس من لا قیاس له در طول چند شب گذشته انایت فرمودید که این فراز از مناجات صبح روز آشورای امام حسین علیه السلام با پروردگار عالمیان. ارز کردم که فرمایشات امام حسین در روز آشورا که ثبت و ضبط شده به ماها رسیده سه قسمه یک قسم دعا مناجات سخن گفتن امام با خدای خود یک قسم سخنگفتن امام با اصحاب، یاران خانواده و اطرافیان خود یک قسم سخنگفتن با دشمنان مخالفین لشکریان ابن زیاد و اونهایی که در مقابل حضرت ایستاده بودند ما اگر دقیق بشیم هر یک از این فرمایشات گرچه در ظرف زمان و مکان آشورای شست یک هجری قمری بوده ولی برای همیشه انسانها به ویژه امروز من و شما درسهای فراوانی دارد که اگر بفهمیم و عمل کنیم الله از مواخب آن برخوردار خواهیم بود من جمله این دعا یا مناجات؟ امام به خدا عرض می‌کنند صبرن علا قضاء یا رب پنج شب گذشته به صبر را غذا را و رب رو با هم بحث کردیم صبرن استادگی مقاومت پای فشاری برای رسیدن به هدف در مقابل موانع کمال و همچنین تقویت عوامل مؤثر کمال که توضیحش گذشت صبرن علا غذایک غذای خدایی با توضیحاتی که چند شب دادیم غذا و قدر الهی قواعد قوانین و نظام الهی که در عالم تکوین با عنوان قضا و قدر تکوینی و در عالم تشری به عنوان قضا و قدر تشویعی حاکم است و این قوانین یا سنت قابل تغییر و تبدیل و دگرگونی نیست اما از همین قضا و قدر است که من و شمای انسان اراده و اختیار به ازن الله داریم و لذا نحوه برخورد ما و عمل کرده ما در رابطه با قضا و قدر الهی میتواند هماهنگی، همراهی و تطابق باشد یا بر مبنای اختیارمان سوء اختیار کنیم به تخالف و درگیری و مخالفت با قضا و قدر الهی بپردازیم توافق با غذا و قدر الهی نتیجه خود را دارد مخالفت با غذا و قدر الهی هم نتیجه خود را امام علیه السلام در اینجا به من و شما می آموزد که من امام حسین در رابطه با غذای تویا رب ایستادگی و صبر و استقامت می کنم اون هم به چه قیمتی که هممون میدانیم. پس پیامشون برای من و شما این است که خداوند بر این عالم قوانینی را حاکم کرده غذای الهی در این عالم نظام الهی در این عالم است همان گونه که شما برای موجودیت تکبینی خودتون باید با غذا و قدر تکبینی هماهنگ شوین تا باقی بمانید برای تعالی معنوی و رفتاری و کرداریتون با غذا و قدر تشریعی الهی هماهنگ شوید و لازمه این هماهنگی صبر استقامت و ایستادگی است که بحثش گذشت اما ارتباط غذای الهی با رب که دیشب توضیح داده شد تکمیلش رو امشب عرض کنم و ادامش با الوهیت الله چرا امام علیه السلام وقتی قضای رب را و استقامت به بخشی قضای الهی را و استقامت با قضای پروردگار را مطرح می دو دواجه رب و اله را به کار میبرند صبرن على که یا رب و در ادامه لا اله سواک الهی غیر از شما نیست باز در ادامه ضمن ادامه این دعا و مناجات به خدا عرض می ما مالی ربون سواک ولا معبود غیرک نیست برای من ربی غیر از تو و معبودی غیر از تو رب اسم صفت پروردگار است جلوه تجلی ظهور و بروز این اسم صفت اونچه برای تربیت کردن مخلوقات از طرف پروردگار آلم معین می شود اگر خدا پیغمبر می فرستد بر مبنای ربوبیت پروردگار است ربوبیت تشریعی اگر خداون نظام عالم را تدبیر می کند آسمان ها با این ضوابط زمین با این قواعد نظام کائنات با این سیستم، این ربوبیت تکوینی پروردگار است. خدا فقط خالق مخلوقات نیست، رب مخلوقات هم هست. ربوبیت پروردگار در مرحله تکوینی قرار دادن قضا و قدر تکوینی آلمه. ربوبیت پروردگار برای موجودات مختار مثل من و شما انسان که به هدایت تشریعی نیازمندیم این ربوبیت تشریعی قرار دادن قوانین و نظام تشریعی عالم است جالبه در آیات قرآن کریم شما دقت کنید این گونه موارد مثل ارسال رسول مثل انزال کتب مثل هدایت را به صفت ربوبیت خدا نسبت داده با اینکه همه اینها خب مال الله هست ولی شما خلقت خلق را به کدوم اسم صفت خدا نسبت میدید خالق روزی رسوندن خلق را به صفت رازق مح... حیات بخشی موجودات را به صفت موهی هدایت، ارسال رسول، انزال کتب عواملی که برای انسان در راستای کمال و سیر الله پیش را به صفت ربوبیت خدا نسبت داده زمان اجازه نمیده من آیات بسیاری رو شاهد بیارم ولی از باب نمونه به چندتا اشاره میکنم کفایت میکنه یک سوره مبارکه یک بقره خداوند با حضرت ابراهیم که سخنانی گفته بعد بهش میفرماید در آیه 131 ازغال لهو ربه اسلم پروردگارش به ابراهیم فرمود تسلیم شو بپذیر قبول کن تابه بشو غاله اسلمت ولرب العالمین من تسلیم میشم به رب اینو فعلا داشته باشید میدونم هنوز در بسته مطرح کردم ولی شواهد دیگر رو از قرآن بیارم این روشن میشه که من از ابتدای بقره اینو شروع کردم یعنی چی سوره مبارکه انعام آیه شماره 71 من آخر آیه رو کار دارم گرچه اول آیه هم به بحث ما کاملا رفت داره ولی این تیکه آخر رو ببینید قول بگو ان اِنَّهْ هو هُوَلْهُدَا بگو هدایت الهی همانا هدایت است و عمرنا لنسلم لرب العالمین و من معمورم که تسلیم رب بشم پس هدایت جلوه ربوبیت پروردگاره از طرف رب قرار دادن اونچه که برای تربیت من و شما لازم است هدایت خدا برای چیه؟ برای تربیت من و شما. پیغمبر فرستادن خدا برای چیست؟ برای تربیت ما. کتاب نازل کردن خدا برای چیز؟ برای تربیت من شما. ما در مقابل ربوبیت وظیفه تسلیم داریم. این عظیم وره ولی من دارم فعلا از اون ور رو عرض میکنم تا برگردم از اون ور از خالق به مخلوق از پروردگار عالم به من و شما که موجود ایجاد شده او هستیم ربوبیتش قرار دادن اونچه که برای تربیت من و شما لازم است در درون ما اونی که لازمه تربیت انسانی است عقل است غرائز است خدا قرار داده لذا اگر یک انسانی به جهتی دیوانه آفریده شد اگر تربیت درست نشد خدا بازخواست میکنه من و شما با عنوانی انسان آخر بازخواست میکنیم میگیم لا یکلف الله و ها چون عواملی را که برای تربیت نیاز دارد در دنیای درون و اون هفته نشده لذا ما وزیفه این که بگیم یه انسان چنین و چنان بار بیاد میگیم نمیشه امکانش براش نیست در بیرون از وجود من و شما هم همون خالقی که برای انسان شدن من و شما در درون من و شما عقل قرار میدهد فطرت انسانی قرار میدهد در بیرون از وجود من و شما هدایت الهی رو قرار میدهد هدایت الهی از افعال یا بروز صفات ربوبیت تشریعی پروردگار است لذا آیه رو ببینید قول ان هدا الله هو هدایت الهی هدایت الهی یعنی چی یعنی امر نهی خدا یعنی باید و نباید الهی یعنی شریعت الهی که به وسیله انبیا به من و شما رسیده میگیم این هدایت الهی برای چیست انسان در سایه این نحوه از هدایت به اونجایی که هادی برای شما در نظر گرفته نائل شوید لذا از طرف خدا ان هد الله هو و امر نال نسلم للرب اینجا نمی فرماد لخالق العالمین لرازق العالمین رب العالمین چرا چون او برای کل مخلوقات عالم ربن الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا هدایت همه موجودات را رب ما به عهده دارد لذا اون آیه‌ای هم که دیشب بحث کردیم الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل اون وکالت هم تجلی ربوبیت پروردگار در این عالمه اجازه بدید یه شاهد دیگرم باز از قرآن در این رابطه سری بخانم رد بشم سوره مبارکه اعراف آیه شماره شست و یک حضرت نوح وقتی با مردم بحث مفصلی میکرد هدایتشون کنه نمیپذیرفتند تهمت میزدند چه میگفتند در این آیه میفرماید آیه که سوره اعراف قال یا قوم لیس بی و لاکنی رسول من رب العالمین چرا رسالت رو به ربوبیت نسبت داده من عامل زلالت نیستم من برای هدایت اومدم من رسولیم از رب عالمین پس ارسال رسول فعل ربوبیت حضرت حق در جنبه ربوبیت تشریعیه باز در این رابطه شما همین سوره اعراف آیه 104 و قال موسا یا فراونو انی رسول من رب العالمین ای فرعون من رسولم فرستادم مأمورم از ناهیه رب عالمیان یعنی اگر خدا مربیست میخواد من و شما را تربیت کند تربیت پروردگار در نظام تکوینیش قضا و قدر تکوینی در نظام تشریعیش قضا و قدر تشریعی قضا و قدر تشریعی خدا چیست؟ ارسال رسول، انزال کتب عوامل هدایت و اون چه که در رابطه با من و شمای انسان در این عالم برای تربیت شدن ما نیازمندیم چه در درون ما چه در بیرون ما یه روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام در غرار الحکم است این درون و بیرون و نظام الهی و تربیت و جلوه ربوبیت الهی رو با یک روایت کوتاه مولای من و شما امیرالمومنین علیه السلام چه زیبا و قشنگ بیان می‌کنند ان به زوال عقوله من الحاجه الالعدب کما یزمع الزرع الالمطر ان به درستی که به زوال عقوله انسان ها که عاقلن و صاحبان خردند حیوان که زوال عقول نیست ان به زبل من الحاجت علال عدب نیاز و احتیاجی که به تربیت شدن دارن به ادب شدن دارن کما مانند یزم و زرع. اون آتش و تشنگی دانه کاشته شده و زراعت به متر و آب بارانه الان شما این انگشتر بندر رو تو مزرعه قرار بدید یا دانه گندم رو تو مزرعه قرار بدید باران ببارد یا نبارد، آبیاری صورت بگیرد یا نگیرد برای انگشتر هیچ تفاوتی نمی کند. چون امکان پرورش استعدادی در درون انگشتر مثل گندم که بیاد بالا و بارور شود نیست. مثل دیوانه‌ای که امکان تربیت برای علم و دانش و درک و فلان نیست. اما انگشتر نیست گندمه. امکان اینکه بیاد بالای خوشه افسدانه ای بده هست اما نیازمند به تأثیر باران از بیرون است ما چون انسانیم استعداد لقای رب داریم استعداد مقام قرب الهی داریم استعداد سیر با عالم ملکوت و اون ارزش های والا داریم از ملک برتر شویم برای من و شما مقدره ولی اون بارانی که قراره ببارد و این استعدادها را در درون ما شکوفا کند اون بروز ظهور، جلوه ربوبیت تشریعی پربردگار است. که از تجلی ربوبیت تش تشریع پروردگار قضا و قدر اوست و لذا امام حسین کلمه رب را به کار می برد سبرن علا یا رب یعنی پروردگار من خدای من تو فقط خالق من نیستی تو رب منی تو رب منی تجلی ربوبیتتون نظام غذا و قدر این عالمه با توضیحاتی که شبای قبل دادم که معنای جبر از او نفهمیده یعنی نظامی که در این عالم آدم شدن آدم وابسته به این نظامه مجددا یه مثال عرض می کنم آقا شما می گید من دانشگده دایر کردم دانشجوها رو آوردم تو دانشگده نظام دانشگده این است که دانشمند شدن دانشجو وابسته است به درس خوندن نمیشه درس نخونده دانشمند بشه معناش اینه که بگم این نظام تغییر نمییابد یعنی دانشمند شدن جبریست من دانشجو تو این کلاس یا با این نظام هماهنگ میشم یا نمیشم هماهنگ نمیشم یعنی لازمه دانشمند شدن درس خوندن درس نمیخونم پس من دانشمند نمیشم لازمه دانشمند شدن درس خوندن خب من درس میکنم. خب دانشمند میشم به لطف عنایت الهی نظام عالم برای آدم شدن این انسان اون نظام تشریعی پروردگار عالم است صبر میکن استقامت داری وای میسی در اون مسیر لذا امام حسین میگه اگه در نظام قضا و قدر الهی برای من امام حسین در آشورا اناللهش شاع این یراک قتیلاست سبرن یا رب سبرن یا رب تا اینجا تکمیل بحث دیشب اما چرا بعدش میفرماید لا اله هست سواک الله اکبر از این دقیقت و ریزکاری هایی که در قرآن کریم اول در فرمایشات معصومین علیه السلام مرحلی دوم وجود داره که جز انایت الهی و الهام الهی و وحی الهی چیز دیگه نمیتونه باشه خب چرا اینجا پرفرمودن لا اله هست سواک به ویژه بعدش تاکید فرمودن مالی ربون سواک ولا معبودون غیرک دوباره تاکید نه ربی غیر از تو برای من نیست معبودی غیر از تو برای من نیست این یعنی چی؟ ارز کردم در رابطه با تربیت مربی داریم برنامه های تربیتی داریم متربی داریم عمل متربی در رابطه با مربی و برنامه تربیتی چهار تا این چهار روک شما یه چهار پایه رو که در نظر بگیرید اگه لازمه این چهار پایه در اینجا مستقر باشه چهار تا با هم باشه یه دونش بریدید این میلرزه استقرار پیدا نمی کنه. برای تربیت انسان مربی لازمه برنامه های تربیتی لازمه متربی هم باشه مثل آما کلاس دارم معلم دارم برنامه آموزشی و تعلیمی دارم اصلا شاگرد ندارم خب پس یه رکنو ندارم حالا شاگردم داریم اما مهم چارمیه چارمی چیه؟ شاگرد در رابطه با این ستا چی کار میکنه؟ مربی رو قبول میکنه یا رد میکنه؟ مربی رو قبول میکنه برنامه های رو قبول میکنه یا رد می میگه مربی رو قبول دارم. برنامه های تربیتیش هم قبول دارم. عمل میکنه یا حرف میزنه. هم مربی رو قبول کنه. هم برنامه های رو قبول کنه نه زبانن عمل کند اینجا نتیجه بگیره. خب طبق این توضیحاتی که این چند شب دادیم در فرمایش ماام حسسه نره اسلام. مربی ما ها رب العالمین حضرت حق است برنامه تربیتیش قضا و قدر تشریعی نظام تربیتی تشریعی در این عالم برنامه تربیتیشه متربی من و شمای انسان چارمی ما میپذیریم یک اصلا خدا را قبول ندارم نعوذ بالله پس از اول میشه هیچی و یه سروازی رو برای نگهبانی گذاشته بودن جایی شب دشمن اومد ایشلیک نکرد صبح اومدن محاکمهی صحرائی کن گفت هزار یک دلیل دارم گوش کنی؟ اگر دلیل من قانه کننده نیست بعد منو اعدام کنی گفت چیه اولیش گفت اولی توپنگی که به من دادن اصلا فشنگ نداشت گفت همین کافیه اصلا قدم اول خدا رو نمیشناسه کسی که خدا رو نمیشناسه برنامه تربیتی خدایی میخواد چجوری بشناسه یک روایتی از امام صادق علیه السلام در کافی جانم به پداشون. الله اکبر یه نصف خط بیشتر نیست ولی عظمت رو ببینید اللهو ولی من عرفه خدا ولی همه نیست انما ولی و کمولا. چرا حضرت یقیت گذاشتن من عرفه یعنی خدا ولی همه هست سرپرسته آقا پدر و مادر ولی بچه سرپرستان سرپرستن قمخارن دل سوزی میکنن تراخوش کشون میکنن بزرگ میکنن چه میکنن حتی این فرزند پنجاه ساله شده پدر هفتاد ساله هنوز میگه بچم. دلسوزی داره یه جوری طبیعی است دیگه خب خدا که ولی همه ای ماست چرا امام صادق فرمودن الله ولی یا من عرفه؟ یعنی کسی که میگه خدا رو قبول نداری که ولایت خدا برای یهو متران نیست مثل یه فرزندی که از پدر بریده جدا شده رفته میگه میگه خدا قبول ندارم خب پدر میگه اصلا قبول نداری جلو من نیست من بتونم با او حرفی بزنم سخنی بگم الله ولی یا من عرفه لذا قرآن میگه الله ولی یا لذینه اومن یخرجهم من الظلمات الى النور اگر ایمان آوردیم ولایتش را خدا بر ما اعمال میکند یخرجهم من الظلمات الى النور ما را از تاریکی ها به سوی نور و حقیقت عالم نور خارج می کند و پیش میبرد خب اینجا ما یک خداشناسی یبونای عزیز راجب خداشناسی کار کنید مولای من و شما خطبه اول نهجل اول اولدین معرفت الله چند تا کتاب راجب خداشناسی خوندید از کدوم صاحب نظر پرسیدی تو زمان حالا با توجب شبعات و ایراداتی که میگیرن کدوم کتابای خداشناسی رو بخونم راجب خداشناسی چقدر من قراره که مثلا وقت بگذارم این اولین قدم پس اون اله رو میخوام بگم اینا رو احتیاج دارم. اول خدا دوم چرا خدا رب باشه؟ خب خدا رب نباشه کی رب باشه؟ اگر الله و ولی و من عرفه اینو اگر خدا را شناختم یک کلمه یک جمله الله اکبر اینو که به زبان میارم، اینو فهمیدم یا ادعا میکنم کنم لقلقه زبانه الله اکبر یعنی چی؟ در محضر امام صادق علیه السلام ذکر می گفت الله اکبر و الله اکبر حضرت فرمود خدا رو با چی مقایسه می‌کنی خدا از چی بزرگتره مگه چیزی با خدا قابل مقایسه است و الله حضرت فرمود اند... در واقع ذهنت این باشه الله اکبر و مما ان یوسف هر چی بخوای بس کنی از او بالاتره قدرت او بالاتره رحمت او بالاتره حکمت او بالاتره عدالت او بالاتره خب وقتی با الله اکبر قبول لارم. چرا نظام تربیتی را برای آدم شدنم به دست خدا ندم رضا صبرن علا که یا من تو رو مربی قبول دارم پس خدا رو قبول کنم مربی بودن خدا رو قبول کنم مربی بودن خدا رو قبول کردم رب منه خب رفتم دنبالش ببینم برنامه تربیتی خدا برای آدم شدن من چیه آقا گویی وقتی ما می‌بینیم جوانایی که علاقمند به تعالی معنوی هن. له له میزنن ها آقا یه استاد یک عالم ربانی یه صاحب نفس به ما نشون بدید ما بریم خدمت اینها ما رو زیر نظر بگیره ما رشد کنیم آقا در مرحله اول برید در خانه خدا اینو بپذیریم رب ما خداست و منیت شغله لا یجعل الله فرغانا و من یتق الله یجعل له مخرجا و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا رفتییم 4 تا کتاب خوندیم طرف دو قدم میاد میگه نتیجه نگرفتم عجب من گاهی به دانشجوام میگم آقا شما در چه رشدی مثلا میگه برق، میگه الکترونیک میگم میخوای دکترها بشی چقدر کار م... اوه، باید پیرم در بیاد میگم میخوای دکترای عبدالله بشی چقدر باید کار کنی؟ آدم شدن از عالم شدن سختتر هست یا نه؟ آدمیت زحمت نداره؟ آقا مبارزه با این هوای نفس شوقیه؟ چرا پیغمبر من و شما فرمودن؟ جهاد اکبر است اعدا، ادو و که نفس و کلتی بین جنبه‌ی همین درون من این هوای نفس من و شما بزرگترین دشمن من و شماست چجوری من اینو شکست بدم شما الان میگی توی درستم هست من حرفو قبول دارم مثلا تو جنگهای نظامی آقا علم میخواد فن میخواد اطلاعات میخواد خودش هزار جور مثلا فوتوفن داره که شما تو یک درگیری نظامی با در طرف مقابل بتونی پیروز بشی ولی پیغمبر که میگه از اون دشمنی بیرونی خطرناکتر در درون شماست با این دشمن چجوری باید بجنگم فوت رو کجا یاد بگیرم اون مربی که میخواد راهشو به من نشون بده یا خدا را قبول نداریم ولی اگه خدا را قبول کردیم این سه مرحله اول خدا هست مربی خداست نظام تشریه خدا نظام تربیتی خداست اما میاد چارمی چارمی چی من در برابر این برنامه تشریح خدا مطیعم یا آسیم این اطاعت دو جوره یه جورش رو میگن اطاعت یه جورش رو میگن عبادت حالا فرقش چیه؟ یه صلوات ناید بفرماید صفحه 182 دویه کتاب فروق اللغه یک کتاب بسیار دقیقی است که فرق لغات ها رو با هم معنی کرده ما بعضی کلمات از ظاهر شبیه هم کنار همه ولی این صاحب تشخیص های توی این رشته میان چنان دقت کردن که اینا با هم دیگه چه فرقی دارن لذا اسم کتابم هست فروق اللغه دوستانی که تو این زمینها کار میکنن آشنان کتاب قوی و قابل اعتمادی است میگه عبادت آخرین مرتبه کرنش است و کسی سزاوار چنین تعظیمی نیست مگر اون که همه نعمتها به با او بازگردد از این رو عبادت غیر خدا جایز نیست و عبادت باید همراه با شناخت معبود باشد عبادت عابد عبد معبود اون ستایی که در بحث مربی برنامه های تربیتی ارز کردم و ما انسان در رابطه با اون اینجا در رابطه با عبادت مطرح کنیم عبادت باید همراه با شناخت معبود باشد عابد متیه حالا فرقش با اطاعت عرض میکنه عابد عبد عبد دیگه عبد یعنی فرمان بر هرچی معبود بگه میگه چشم خب اگر معبود اصلا نشناسه معبود رو سزاوار پرستش و عبودیت نداند معبود را بشناسد سزاوار پرستش بداند ولی در مرحله پرستش کوتاهی کند عبد نخواهد بود پس عبادت با شناخت معبود اطاعت است که طبق اراده مطاع اونی که دستور داده قرار من از او اطاعت کنم الان شما پدر میشید بر بنده ولایت دارید امری میفرمایید بنده فرزندم ولایت شما ایجاب میکنه من مطیع شما بشم شما میشید متاع من میشم متی اون فرمان شما مورد اطاعت عمل من اطاعت یا عصیان خدای نکرده حالا اطاعت کاری است که طبق اراده متا انجام میگیرد و میتواند برای خدا یا بندگان صورت بگیرد اطاعت غیر خدا هم داریم ولی عبادت غیر خدا نداریم لذا ما میگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر اطاعت و من یت رسول فقط اطاع الله کسی اطاعت رسول کنه در واقع اطاعت خدا کرده اطاعت خدا، اطاعت رسول خدا اطاعت خداست ما میتونیم مطیع غیر خدا باشیم به شکل مثبت، به شکل منفی مطیع غیر خداییم تو امرو نحی خوب شما پدر بنده نه معلم من، برادر من، دوست من، همسن من، شاگرد من از من خیلی هم سنت کمتر ولی یه فرمایشی میکنی میبینم بسیار مفیده بندم گوش میکنم اطاعت میکنم نتیجه میگیرم خب این اطاعت عبادت نیست و لذا ارزشم داره نتیجم میگیرم اما حتی اگر پدر بنده باشید نعوذ بالله اطاعت خلاف شعر بکنید که بنده دیگه موظف نیستم اطاعت کنم ولی اطاعت کردم میشه اطاعت باطل و این اطاعت باطل آثار سوء خودشو داره لذا اطاعت میتونه از غیر خدا باشه مثبت باشه منفی باشه عبادت اطاعت خاشعانه و با تزلل فقط از خداست به قصد عبودیت حضرت حق لذا در فقه فقها میگن عبادات تقسیم میشود به توسلی و تعبدی در عبادات توسلی وصول کافی است در عبادات تعبدی بینیت نمیشود مثلا دست بنده اگر خونی بود نجس بود من کنار یه رودخونه ای به خواب رفتم دست من افتاد تو رودخونه آب اومد از روش رد شد این پاک شد ولی من اصلا نیت نکردم قصد عبودیت خدا نکردم اما اگر قرار نماز بخونم تا نیت من قربتا الى الله نباشد نماز نیست از اینجا حرکت میکنید میرید مکه مکرمه تمام آداب مکه رو انجام میدید ولی در نیتتون قربتن الله نبود نعوذ بالله برای این بود که همسایه‌ها به من بگن حاج شما حاجی نشدی شما هنوز مستقی باقی موندی چون غربتن الله مطرحه عبادت اطاعت خازانه و خاشانه در برابر حضرت حق بانیت بندگی همراه با این انگیزه انایت بکنید تمامی مقدماتی که چند شب عرض کردم حالا رسید به اینجا که چی؟ خدایی اله اله را معانی مختلفی کردند. اونی که در رابطه با این فرمایش امام حسین مطرحه و خود امام حسین در ادامه همینجوری معنی کردن اینجا که اگر عرض میکنند به خدا سبرن علا قضا رب لا اله هست سواک در ادامه مالی ربون سواک ولا معبودون غیرک پس اله رو معبود معنی کردن که در بسیاری از کتب لغت و در بسیاری از آیات قرآن کریم هم همین بحث اله به معنی معبود به کار میره معبودم با بحث عبادت فرقش با اطاعت توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی چی یعنی اطاعت کردن از او با عنوان خالق و مربی که سزاوار پرستش است و در مقابل او خاضه و خاشع شدن به نیت بندگی که جز با عبادت تو به جایی نمیرسم و این عبادت رو هم به اختزای سطح عبادت فرق میکنه که امیر امام حسن، امام حسین، امام, امام صادق هر چهار امام من دیدم، امام مجتبا دارن که عبادت کنندگان سدستن عبادت تاجر پیشگان، عبادت بردگان، عبادت احرار و از امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد دوم باب عباده این روایت را مشهور را قطعا همتون شنیدیم داریم که امام صادق فرمودن، پیغمبر فرمودن افضل و ناس من عشقا العباده از جاهایی که در روایات معصومین کلمه عشق به کار رفته یکی اینه در اصول کافی جلد دوم صفحه 8 رو هم من یاد کردم خدمتون ارز کنم جلد دوم صفحه هشتاد و سه و ناس من عشقل عباده حالا عشق آبده ولی عابد آشقانه عشق چیه؟ برخی از کلمه عشق خیلی وحشت داره چون معنی منفی هم دار آخه سو هم استفاده شده ولی وقتی در زبان معصوم اومده که معنی منفیش منظور نیست افزلل عباده اون عبادت کسی است که افضل ناس من اشغل عباده پس تاییده پس اینجا عشق یعنی چی یه معنی اصطلاحی داره یه معنی لغوی معنی لغویش خیلی مورد نظر نیست معنی لغوی شما به کتب لغت مراجعه کنید میگن عشق علاقه محبت و دوستی سطحیست اه. مثل شما عشقی گله این به دور یه درخت ها میپیچه میره بالا به عمق این درخت فرو نمیره فقط به بدنش چسبیده اونم برای سو استفاده خودش حتی اون درخت ممکنه خوش کنه برای اینکه خودش بتونه روی این درخت بره بالا بعضی ها میگن خب عشق رو به این معنی عشق میگن چون طرف اون عشق منفیه. که همون معنی از باب مثلا سو استفاده و لذت شخصی بردن خودشو چی و چی بگه بله دلباخته شدم چه شدم چه شدم. اما عشق به معنی واقعی کلمه چیه میگن همون جوری که گل عشقه به این درخت میچسبه درختو خشک میکنه یک وابستگی بین عاشق و معشوق ایجاد میشه عاشق دیگه خودشو نمیبینه معشوق رو میبینه انگار خودشو فدا میکنه میگه چی میخوای میگه هرچی او بخواد چه میپسندی هرچی او بپسنده لذا میگن معنی اصطلاحیش عین علاقه شین شدید قاف قلبی علاقه شدید قلبی رو میگن عشق که قرآن کریم با باجه اشد و به کار برده خود حب در زبان عربی از حب دانه درون یعنی دوست داشتن درونی قرآن اشد و حببن فرموده که در سوره بقره دارید که از مؤمنین کسانی هستند که اشد و حببن لله شدیدترین علاقه دلیشون با خداست عشق اشد و حببنه یعنی شدیدترین علاقه خب علاقه ما وقتی میخواییم یک کاری رو انجام بدیم یه وقت با اکراه انجام میدیم میگه آقا این کار رو بکن باشه چشم بالا رو رودرواسی شما مجبورم دیگه چیکار کنم یه وقت یه سرنیزه بالا سر منه میگه اگه انجام ندی پدرتو در میارم میگه خب چیکار کنم گفت دو رکت نماز میکنم از ترس صابخونه قربتا الله گفت دیگه قربتا الله شو بردار شو قربتا الله صابخونه خب این دیگه این عمل معلومه که بر مبنای اون ترس ایناست اما یه وقت میگه آقا چنان این کارو دوست دارم حتی بهش میگن آقا دانشجوه دبستان بود میگه این جایزه رو بدم نمره خوبیاری میدم به خاطر جایزه درس میخون اما حالا به سنی نرسیده چنان علم و دوست داره پدر و مادر میگن آقا داری خودتا ازیت میکنی بس سبری کم به خواب میگه این مطلب رو تا کشف نکنم خوابم نمیبره چرا؟ چون حبه علاقه است یه وقت عبادت اطاعت مربی برای تربیت با اون توضیحات گرد کردم از باب ترس پدر مادره از باب نه ترس جهنم نرفتنه از باب حتی تمعه بهشته خلاف مروت ببد كولیا تمنا کنن از خدا جز خدا به کجا میرسه میگه آقا اصلا به این نتیجه رسیدم کمال من تعالی من سعادت من انسانیت من جز با بندگی حضرت حق امکان پذیر نیست اینجا معبود میشه اله اله میگن چون منو واله و حیران خودش کرده هرچی به عظمتش فکر میکنم متحیرم هرچه به رحمتش فکر میکنم متحیرم هرچه به انایتش فکر میکنم متحیرم میگم با داشتن این خدا جای دیگه برم ولا یا میکن الفرار فرار من حكممتک الهی و ربی من لی غیرک مولای موحدان عالم در دعای کمیل این دنیاش الهی و ربی من لی غیرک ولا فرار الفرار من حکومتک وقت برای آخرتش حبلی صبرت علی حر نارک و کیف صبروا علی فراقک آتش جهنم رو تحمل میشه کرد. بلی اینکه توی خدا من رو از خودت برانی اینو چجوری بخوام تحمل کنم؟ این معنا میشه عشق عاشق عبادت. و بقیق رو از تمام وجود دوست می‌داره. اجازه بدید بازی مثال بزنم. خاک بر فرق من و تمثیل من. اصلا قابل قیاس نیست. بلی از باب مثال، آقا یه درد خانمانسوزی به بدن فرض کنید ما افتاده پزشک حاضق قمخار دلسوز یه داروی رو به ما داده حتی داروش هم خودش تحیه کرده گیر نمیاد میگه این دارو شما نمیتونید تحیه کنید من دارم بیا اینه ببر حتما از همین امشب این دارو رو شروع کنم به خوردن بسیار تلخه بسیار بدمزه است بسیار فرض کنید خوردنش دشواره یه افراد کم سن سالی که ظواهر امرو رو میبینن با رقبت این دارو رو میخورن یا شما با هزار وعده و, و میدید اما در سن بنده و شما اگه خدایی نکرده نیازمنده به این دارو شدیم با تمام رقبت این دارو رو میخوریم ولو بسیار تلخ و بدمزه است و با اون پزشکم هی میگیم خیلی ممنونم خیلی لطف کردی خیلی عنایت کردی من چجوری از خجالت شما در بیام نیست الا خدای عالم میگه تشکیس درد شما با منه. داروشم با منه. یک هزار طبیبم فرستادم سراغتون. اونا فوش و تحمل کردن. شهادت و تحمل کردن. زندان و تحمل کردن. بعدم دوازده امام قرار دادم. یازده امامش همه دردها رو به جان خریدن. یکیشم ابی عبدالله الحسین است که ببینی چه کرده که این دارو به شما برسه. به تعبیری وقتی میفرماید و و انکان دین و جدن لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی شمشیرها منو در بر بگیرید من کشته بشم ولی این دارو به دست این مردم برسه اینا راه آدمیت حالا یه انسانی که الله و ولی یا من عرفه این معنا رو وهمید او عبدالله الله میشود یا نه عبد اله لذا لا اله سواک جانم به فدایت ابی الله روز آشورا چی داری میگی؟ قرار سرم بایی نیزه بره؟ این نظام تشریعی پروردگار در این آلم سبرن علا غذا اکه ای یارب این غذا ربوبیتی توست من داری تربیت میکنی؟ بشریت با این شهادت من قرار تربیت بشن من حسین سبرن خم به عبرونه بعدش لا اله سواک خدایی غیر از تو نیست الهی غیر از تو نیست معبودی غیر از تو نیست یعنی اگه قرار اطاعت بشه برای تربیت اطاعت غیر تو رو من انجام بدم اینجا احتیاج دارم یه تحلیل عقلی کوتاه بکنم بعد برگردم یه سالوات انات بپرمونم ممکنه این سوال در ذهن جوون ها ایجاد بشه. بگن که آقا عبادت، اطاعت، بندگی اینا محدودیت آزادی از ارزش های است که همه انسان ها در طول تاریخ قبولش داشتن. شما وقتی میگید که اطاعت کن، عبادت کن، بندگی کن داری محدودش میکنیم. مثل انسان آزاد باشه. چرا معذرت میخوام موی دماغ ما میشید؟ چرا انقدر تو مخ ما را میرید؟ ما میخوام آزاد باشیم تو این عالم جواب هیچ انسان آقلی حتی حیوان به صورت تکوینی حالا ارزم هیچ انسان آقلی در این عالم نیست که بگه برای حتی سعادتمندی طبق بینش خودش سعادتمندی در سد مادی منای من معنویت رستگاری حتی دنیایی منهای قیامت اون هم در جای خودش بگه آزادی مطلق منهای محدودیت شما اگر یه آقازاده دو ساله داشته باشید تو حیات منزل رابری و حوز گودی پر از آب باشه آزاد میذارید جلو آزادیشو میگیرید داره میدوه نرو نرو جلو نرو و چرا ما میشید بابا میفته تو حوز خفه میشه بچه تازه را افتاده تو خونه خیلی هم خوشحالی الحمدلله داره را میره بخاری روشن داغه داره میره نه نه جلوشو جلو بگیرید چرا محدودیت ایجاد میکنید آقا خوردن حتی در شرایطی که هیچ بیماری هم ندارید میگه آقا زیاد نخور اذیتت میکنه بس محدودیته چرا ما نمیشی بذار بخورم یا آقا خوردن به حسابی کتاب بیچاره میکنه حالا اگر توی شرایط بیماری هم قرار گرفت قندش بالاست فشارخونش بالاست خونش داره غذای پرنمک و غذای شیر میگه ناد بخوری حتی حیواناتی محدودیت رو قبول کردن چرا کلاق نمیره تو آب مثل شنا کنه بر زیر آب. چرا ماهی نمیاد مثل کلاق رو شاخه ها قرار بگیره و لذا اگه انداختی بیرون آب آبم هی تلاش می بتونه خودشو برگردونه یعنی با اون نظامی که خدا قرار داده خودشو بفره؟ آقا محدودیت مثبت برای رستگاری و سعادتمندی طبیعیه شما تو مس... این مسائل حتی جسمانی تکوینی این عالم حالا مسائل اخلاقی پدر و مادر اگر یه صحبتهایی بین زن و شوهری هیچ اشکالی هم نداره به محضی که نزدیکترین افراد به انها بچه بیان میگه این حرف رو سلاح نیست بچه بشنوه. این محدودیت نیست؟ چرا سلاح نیست بچه بشنوه؟ قرار رو رشد کنه قرار تربیت بشه حالا که هستی که مثل خدای یا محدودیت رو باید برای ما معین کنه یا سلیقه شخصی من و شما حالا ببینید قرآن کریم در این زمینه چه درسی به ما میده شما آیات بسیاری در قرآن دارید من یک بررسی اجمالی کردم بیش از نه مورد در قرآن کریم کلمه رب به کار رفته بیش از نه مورد از اون واژههایی است که انقدر خدا این کلمه رو و ب... 242 بار خطاب به پیغمبر اسلام رب و 118 بار خطاب به امت اسلامی ربکم و در تمام اینها ربوبیت رو با الوهیت به گونه ای مطرح کرده که در بسیاری از آیات ربکم الله ولا اله الا الله رو این آیه مخصوصاً عکس کنید ربکم الله اون ذات جامع جمیع صفات کمالیه مربی شماست خوب رب گفتم از بالا به پایین یعنی معین کننده برنامه تربیتی اله معبود یعنی نحوه برخورد عبادتی و اطاعتی من با او که اطاعت بالاتر از عبادت اطاعت خاص با اون نیاز حالا رب است الله هست جامعه جمعین صفاته رب مربی شماست دستور عمل داده اله معبوده یعنی شما نحوه عبادت با او را مشکل ما انسان ها اینه قرآنم این اشاره کرده این اله را میذاریم کنار هوای نفس میذاریم جاش لذا آدم نمیشه لذا جامعه انسانی هم اونی که باید بشه نمیشه حالا دقت کنید من یک آیه رو نمیدونم دیشب بود یا پریشب بود به مناسبتی براتون بحث کردم یادآوری می میکنم به این آیه دقت کنید تا برگردم اون آیه رو بگم در سوره مبارکه مزمل گفتیم که خدا میفرماید رب المشرق و مغرب لا اله الا هو و وکیلا یادتونه بحثشو کردیم؟ رب مشرق رب مغرب یعنی مربی کل هستی یعنی رب العالمینه لا اله الا هو معبودی غیر از اون نیست پس اگه قرار عبادت بشی غیر از اون هیچ چی فت فتخذه وکیلا وکیل بگیر با اون توضیحاتی که دادم یعنی آقا کارتو به او بسپر ببین چی میگه از اون گوش کن اینو داشته باشی حالا بیایید سوره مبارکه فرقان آیه شماره 43 تقاضا دارم خوب دقت کنی ارائیت من اتخذ الهاه و هوا هو اف انت تكون عليه وکیلا الله اکبر از این عظمت ارا ای من چه خزع الهه هو هوا ای پیغمبر اینایی که الهشون رو هوای نفسشون قرار داد دلام میخواد آقا خدا حرام کرده دلام میخواد خدا اینو زشت میدونه جامعه اینجوری میخواد این شکل مجلس گرفتن عروسی گرفتن مهمانی رفتن مهمانی دادن زندگی کردن حرام است خدا در نظام تر... تربیتیش اینا رو زشت معرفی کرده خب من دلم اینجوری میخواد اینجا میگه اله او یعنی چی؟ یعنی معبودش یعنی اونی که چنان مطیع شده با خشوخ چش در مقابل نفسش تسلیم تسلیم خدای بیامرزیه که از دوستان ما اسباحانی هم بود خیلی هم شوق بود شد اکثر شما بشناسید میگفت من ای با هوای نفس میکنم سر سفره غذا نفسم میگه سیر شدم میل دیگه میل ندارم میگم خفشو بخورم مگه میل توه این مخالفت با نفس تو کدوم جهت نفس چیزی میخواد که خدا نه... هوایی نفس خدا میخواد خب ارائیت بقی... الله اکبر ادامه رو ببینید ارائیت من اتخذ الههو هواهو اف انت تکونو علیه وکیلا توی پیغمبر میتونی برای او وکیل باشی او معبودش شکمشه معبودش پولشه معبودش دنیاست معبودش مقامش میزشه مدل اتومبیلش دکور منزلش برو روخ کشیدن ثروتش به روی دیگرانه غرق این تعلقات و اعتباریات شده اون معبود بودن خدا را فراموش کرده توی پیغمبر میتونی وکیل او باشی؟ تو آیه مزمل گفت چی؟ رب مشرق و مغرب اله وکیلش قرار بدید اما اینجا میگه وقتی هوا آمد اله شد دیگه توی پیغمبرم امام حسین روز آشورا با این مردم چقدر حرف زدن؟ جواب چی دادن؟ سنگ زدن حضرت چی فرمودن؟ دو تا عبارت فرمایشات امام حسین روز آشورا با سپاه ابن زیاد روش دقت بکنید یک آیه قرآن خوندن استحوز علیه الشیطان شیطان فانساکم ذکر الله تبن لهم که آیه قرآن اختباس کرده شیطان بر اینها قلبه کرد خدا فراموش شده دوم فرمودند که ملع اتبتونكم من الحرام شکماتون از حرام پر شده یعنی چی یعنی دیگه وقتی کار به اینجا میرسه آقا این لیوان این لیوان اگر شما بردید توی آب که آب توش قرار بگیره یه ضرب شربت اصل گبارای عالی دارید میخواد لیوان بزنید توش شربت بگیرید استفاده کنید ولی لیوان پر از حواس شربت توش میره تا اون هوا خالی نشه شربته داخل نمیشه مرحوم الله احمد نراقی این عالم اخلاقی بزرگ در کتاب معراج السعاده یک داستانی رو نقل میکنه داستانه برای تقریب زن بسیار جالب میگه یک سلطان زاده ای حاکم زاده ای ثروتمند ای مستعد بود خیلی از نظر توانمندی علمی قوی به یک معلم لایقی سپردن اینو تربیت کنه بعد از مدتی دیدن بچه هیچی یاد نگره تغییر نکرد معلم رو خواستن و سرزنشش کردن آقا این بچه عمرش زایه شد شما چیزی بهش یاد ندادی گفتی یه شرط داره اگه شرط من عملی کنید قول میدم که یاد بگیره گفتن چیه؟ گفتی یه دامن گردو بیشون بدی تو کتاب تا ساده است یه دامن گردو بدید بگی تو کیابون راه بره و هر که میرسه بگه آقا یک گردو بهت میذنم بزن تو صورت من بعد بیاد سر کلاس گوچی آقا گردو رو بده کتاکم بخوره این چه نظام تربیتی است حالا ممکنه این مثال باشه ولی راه بهتره باشه ولی من اصل منظور مهمه گفت این انقدر مغرور کلهش باد داره تمام وجودش هوا پر کرده اصلا حاضر نیست گوش بده من چی میگم ما گاهی شوخی میکنیم با بعضی دانشجوها میگیم زبان حال بعضی دانشجو تو کلاس این گونه است ای زمین بر قامت والا نگر زیر پای کیستی والا نگر خم مگه شوخیه ای آدم چجوری میشه شما تیم اول باید بش گفت این سیلی ها رو بخوره بشکنه خود را نبین که رستی در کوی ما شکست دلی میخرند و بس بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است آقا تا هوا من اینجوری میخوام من چه کار هست خدا چه جوری میخواد امام حسین داری این خدا میخواد تو کشته بشی الله شان یراک قتیلا خم به ابرو نمیارم نه من خم به میارم نه زن و بچم خم به ابرو میارم نه اصحابم خم به ابرو میارم ای بای هنوز پسرم داماد نکردم هنوز دخترم عروس نکردم هنوز آرزوها دارم اینا چیه؟ چه میخواهی اون چه او میخواهد این پیام امام حسین در روز آشوراست و وقت من سینه بزنم گریه بکنم شل زرد بپزم قضا بدم خدا از همتون قبول کنی این کارا رو بکنید اما ندونم امام حسین چه درس به من داده صبرا الا قضا اکه یا رب لا اله سواک بعد مالی مالیه نه نیست برای من ربون سواک ولا معبود معبودون نه نه نه من مربی که به من بگه چه بکن کنچه نکن غیر از تو قبول ندارم الهی که آشقانه عبدش بشم و در مقابلش تسلیم بشم غیر از تو ندارم لذا روز تاسوعا می که عباس جانم اینا بگیدی یه شبم به ما وقت بدن من عبادت و دوست دارم نماز و دوست دارم مناجات و دوست دارم قرآن و دوست دارم میگه شب آشورا وقتی از کنار خیمه های عبی عبدالله رد میشدن تعبیری که داره همه تونم شنیده اید و خنده اید و میدونید میگن مثل زم... کندوی زنبور اصل صدای وزوزی که اطرافش میاد صدای قرآن خوندن و دعاب و مناجات اینها به گوش میرسید روز آشورا هم ابو سمام سائدی گفت آقا موقع نماز گفت خدا تو رو از نمازگزارا غلار بده نماز خوف بخونیم روز آشورا و میان یک تن از اون آشغان بیقرار بو سمام سائدی بود نام وی کرده راه عشق را مردانه تی در چنان قوضا و سوز و گداز عشق افکندش به سوز و گداز سوی شه بشتافت با سوز و گداز آشغانه دم همی زد از نماز از نماز اون مرد خدا از نماز تا دم زدن مرد خدا شهزت تعداد مسلینش رو مرد، ازن شه صادر شد از بحر نماز، از آن پس معزن گفت تکبیری چنان که صدایش عالمی مدهوش شد، هرچه بود صاحب صدا خاموش شد، این که می آید کنون بحر نماز کعبه را او ساختند در حجاز، کعبه مقصود ایجاد است او، کعبه را هم اصل بنیاد است و هم صفا هم مروه باشد هم منا هم مطاف عرض باشد هم سما در نمازش هر طرف خواهی بیست در درون کعبه رسم قبله نیست مفصل در قیام اولین بعد از رکو تیرباران شد زهر جانب شروع کشتگان عشق پیش شاه عشق سر به کف بکرته یک راه عشق خونشون بنوشت بر لوح حیات، از ای اهل عالم از سلات، تا جهانی زین قیام آگه شود آگه از مخصود شاهنشه شود که این حسین با کشتگان عشقباز قصدشون بوده است احیای نماز، این نماز ظهر امام حسینه، خب نماز عصرش چی بود؟ پس نماز عصر را بگذاش شا، پس نماز عشق را بگذاشت شا خود فرادا در میان قتلگاه اون نماز عشق که از خونش وزوست آشق و معشوق اونجا روبروست صبرا علا غذایک حالا تو گودال قتلهگاهس شمرم با چکمه روسینش نشسته و شمر جالسون علا صدره فزهکل حسین حسین داره میخنده الهی رزن به رزائک تسلیمن لغزائک لا معبود از سباک. معبودی غیر از تو ندارم داره آشغانه با خدای خودش راز نیاز میکنه بله همون گونه که شب آخر مجلس ماس ارز ادبی کنیم به ساحت مقدسی حضرت زهرا سلام الله علیها ها همون گونه که فاطمه زهرا مادرش نوود و پنج روز بعد از پیغمبر در دفاع از ولی امام زمانش امیرالمؤمنین به گونه ای استقامت فرزید که امام صادق فرمودند در این نوود و پنج روز از مادر من جز پوست و استخانی چیزی باقی نمانده بود راه میرفت دست به دیوار میگرفت از این پهلو میخواست برگرد و اون پهلو ناله میزد اما حالا به امیر فرمود علی جان میخوام وصیت کنم میترسم تو نتونی الان دستت بسته است مظلوم واقع شدی ازیت بشی نمیخوام ازیتت کنم اجازه میدی به عموم عباس وصیت کنم نه زهراجان وسیعت تو به خود من بکن من انجام میدم وصیتاشو کرد نگاه کرد به علی علی جان از من راضی هستی انجام وظیفه؟ کردم بعد شروع کرد گریه کردن امیر میدونن منو شما بدونیم زهراجان برای چی گریه میکنی برای جوانیت نه یا علی من که دارم میرم پیش بابام این که گریه نداره برای بچه های نه یا علی اونا بابایی مثل تو دارن برای چی گریه میکنی برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنم ن والدليان ما زهر انا اجي کل و هم و قمن سیان جلی يا الله Benuboutke ya Nabawatcha kayanavi Apply... Yeh, yeh, yeh, ya ali ya ali ya ali ya ali Allahumma bismik al-azim al-azim al-azil ajal l-akram Be sahib ya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 مغلب الغنون سبت قلبي على ديني ركفنا يا وازي ويا كافي المحمود انك مجيب الدعوات انك على كل شيء غدير، برحمتك يا ارحم الراحمين ويا جلالي للمتحيرين ويا اله العالمين ويا مالك يوم الدين نجنا منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم اما I will be your اما یو جیبان مزتر و یک جبوس یا مزیب دعوت المزتری بکن نامزترون فجر و یا خیاس المزدر المستدیسین بكينا مستغيثا غاسلا الله يا حميد وبحق محمد يا لي بهالي يا فاتر راغ فاطمه يا محسن وبغ الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين وتسع اصل ما اسم من ذريه اللهم <سؤال> عجل لوليك الفراد اللهم عجل واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر <من> الدين, <الدين> خازل من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما الصالمين غانمين، اللهم اجعل ابواب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضا اللهم لا تصلت علينا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا و لوالدينا و لوالدي والدينا و وجبله وجب له حق علينا و لمن وسانا بدو خدایا اون در این ایام عزایی ابی عبدالله به بندگان صالحت مرحمت کردی امشب به جمع ما مرحمت بفرما اموات و زبی حقوق من بلعخص مروم جای مادزاده با آج از سائه مهمان عبی عبدالله قرار بده جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما مملکت ما شیعان دنیا محافظت بفرما نقشه دشمنان نقش بر آب بگردان دستهایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزور الحجا يا رب الحجا بحق الحجا اشف صدر الحسين بزور الحجا وعجل الله في فرج مولانا نصره السلام علیکه يا عبد الله و وعلى الارباح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد من لزيارتكم السلام على الحسین و علی بن الحسین وعلى علی ایبن الحسین و علی اولاد الله و اللهم صل على علي بن موسى الرو المرتوا المام التقي النقي وهجتك على من فوق الأرض ومن تهد الثراء الصديق الشهيد سلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كاول ما صليت على أحد من أوليائك السلام علیک یا مولا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا حجت الله سلام علیک یا بقیه الله سلام علیک یا صاحب الامر و زمان اجل الله تعالی فرجک و سحلالله الله مخرجک سلام علیک و علی آبایکت تیبین تاهرین و رحمت الله و برکات و حلفات اما